وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَخُدَاهَ اَزْهَجَرَ الْلُطْفِ وَعِنَایت کلام کرد با موسیٰ نه داره با لطف با انایت با موسیٰ رب موسیٰ با موسیٰ کلام کرد خود یک نعمتی که در تیامت میرسید نعمت کلامه نعمت دیگر نعمت دیداره حضرت دید که الله تعالی مورد انایت قرار داده و در دنیا با من کلام کرد رب سبحانه و تعالی لحظه درخواست کرد که دیداری که نعمت دیگر است در قیامت نصیب میشه دیدار بلم فرمودن قال رب ارنی انظر الیک فرمودن حضرت موسی علیه السلام ای رب من نشان بده با تعظیم و من بمن الیک من نظر می کنم به جمال شما به دیدار شما دیدار نشان بده که انظر ایریت اللہ تعالی فرمو رو جواب اول لن ترانی هرگز نمی بینی مرا در دنیا در دنیا تحمل دید من را ندار ولیکن انظر لیکن تو بی این کو نگاپ حالا این منتشفی که در لنترانی شما وسهسه پیدا نکننی و در قلب شما تشفی بیا آید شما نگاه کنید به طرف کور این کور بر اون نظر می اندازم یک ذرت می میکنه اگر ان کو سرجاتون نیست تحمل کنه تو شما معنی بین س استقر مکانه او اگر ان کو در جای خودش قرار گرفت و باقی ما. قائم من استقرر من, من در جای خودش پس شما را ما نمیتونی ببینید تجلی من, بی بی من تحمل کنید تو بلما تجل تجلی را رب پس وقتی که تجلی کرد در حدیث آمده اندازه سر ناخد این غد رسول صلی اللہ رب یک ذره تجلی کرد لیل جبل جعله الدکا قرار داد اون کوه را خوبیده مدکوک خوب شد مدکوک یعنی کود شد و خر موسی سائکا و حضرت موسی افتادن زمین بیهوش شد سائکا یعنی بهوش شد فلما افاقا وقت موسى موسی افاقا حاصل کرد زنده روشی قال سبحانک باکی ترقا از برداشت این چشمائی فانی تو تو که من به طرف تو رجوع کردم از درخواست مشتاقانه که داشتم و انا اول مومنین من اولین کسی که تصدیق میکنم در دنیا تحمل نمیشون تجلی تو من اول کسیم که باور دارم که تجلی شماش را گفتی لن ترانی باقیم تحمل نمیشون قبول حالا یک مسئله سرورانگرامیه بین اهل سنت و شیعان همین اختلافیه که دیدار رب سبحانه و تعالی می شود قیامت یا نمی شود اهل سنت اعتقاد دارن تمام اهل سنت که دیدار رب و العالمین روز قیامت یک نعمت ازمائی هست اللہ تعالی با اهل جنت دیدار می نمائن اون هم دیدار به صورت تجلیه کون ہو حقیقت و ماهیت خدا نه تجلی میکنن اون تجلی الهی تحمل در دنیا حضرت موسیٰ کلیم درخواست کردند و اللہ تعالی فرمودند شما نمی توانیون رو بیدیدید تحمل ندارد خب این درخواست موسی که یک پیغمبر عظیم و و تقریبا از چهل سال بیشتر در نبوت و رسالت دارد نوز و خود این درخواست دلیل معتبری هست که دیدار رب سبحانه و تعالی قابل دیده و یک پیغمبر از مسائل خدا به هر نبی آنقدر علم میدهد که تمام معرفت خدا نسیب شود. هر نبی در آخرین نقطه معرفت دارد. این نیست که نبی مسائل نمی حضرت موسیٰ کلیم علیه السلام یک پیغمبر بسیار قررع از صاحب وحی و یک پیغمبر بیشه و الله و موسیٰ تکلیما امتیاز خاصی خدا به حضرت موسیٰ علیه السلام داده این پیغمبر عظیم و وقت وقتی درخواست میکند دید کلام نعمتی از در آخرت نصیب بندگان میشه خدا با بندگانش کلام میکند کتاب و کتاب نگیره بله حسد رفت نعمت دوم که دیدار از اون به من نشان دهد اللہ تعالی فرمود شما نمی توانید تحمل کنید دیدار من را نمی کنید تحمل شما نمی کنیدید نگفت که من دیدنی نیستم تجلی من مشاهده نیست شما تحمل شن لهم ترانی اے پیغمبر شما نمی توانید من تحمل کنید نگفت که لینه ارا من دیدنی نیستم من بیدید نمی آیم، شما نمی دوانی منو بگویی. چرا؟ این تسمه ها و این آتاقی که خدا به بندگان خودش داده به انبیا فانی فانیه. اینها یک مرتبه می در عالم ادم فنا میشن. نوبت دوم الله سبحان و تعالی به ما که وجود اناهات می کند و به بندگانش، اون وجود اون وجود دائمیه. اون چیز وا دائمیه وجود شهاد دائمیه اون عزارات دائمیه اون مغز دائمیه دیگه بران وجود فنا نمی آیه لحاظ با اون قسمهای دائمی تجلی رب سبحان و تعالی تحمل هر چیزت واختی داره حال یک زمانی از که ما انسان ها مشکلات بزرگی را می تحمل کنیم لیکن در زمان به بچگی کس نمی تونه تحمل شاید یک انسان جفاکش و جفا دیده صحب تا زور زور تا بی کشم میتونه راه بره لیکن بچه کچه کجا میتونه قد راه بره شاید علم میده بی میده بی لیکن نیم ساعت راه بره خسته میستن زمین و دیگه قرآن ازیم و شن خانده ایم توجوه یوم ازیم ناظره تلا ربها ناظره جهده ها و تاظره و بطرف رب سبحانه و تعالیم و لدينا مزيد بوصي پیغمبر علی اصراف ما مشاهده کردن هیچ مزاحمتی الله تعالی رغبا میکیم به جنتی را دیدار تجلی را نشان میده اونجا هیچ تجلی هست. اون تجلی را بدون مزاحمت آن جنت تماشا می و اینقدر لذت از دربی صادقه است که از تمام نعمت های دیگر حاله جنت فراموش مسلمان در تجلی الله سبحان و تعالی نظاره گفتگو و درسته انسان وقتی در دیدار محبوب را میکند دیگه چیز را آره کجا میتونه نگاه کنه غیر از دیدار محبوب دیگه چیزی را نگاه نمیکنه غیر دیدار محبوب را نگاه میکنه دنیا را نیتو حالا که کسی ترکان بره مادر غیر از سرزندش دیگه چیزی را میخواد نگاه کنه دیگه چیزی را مورد تفکر قرار یک فرزند مفقود بیاید چقدر به اون نگاه میکنه و چقدر اون فرزند محبوب را که سالها ندیدن چقدر نگاهش میکنه همه تیم مورد تفکک کردن میدارن سلامت و سلامتیش را قیافهش را اشیا غیرا حالا دیگه محبوب آره چقدر انسان نگاه میکنه حد دوباره این دیگه چیزی را که نگاه نمیکنه غیر از خودش البته خدر محضوب را محب می داند اون می داند که محضوب چقدر لطف دارد نگاهش بل آنها که اعتقاد ندارند به دیدار رب سروران گرامی آنها نمی من اِنَّهُ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْ مَاِذِنْ لَمَحْجُوبُ تعالی میگه، اونها از پروردگارشان در آن روز در حجاب قرار داده میشه. یکی از بالا ہائے سختم مینے کہ اللہ تعالی دیدار با نشان نہیں کفار ملحدین را اللہ تعالی میگه از رات خود در حجاب قرار داده میشو این هم رب یوم ذل ما حجوب و ان در میان امت الحمدللہ این اعتقاد از مسلمات بوده دیگه نمیخواد دیگه دلیل عقلی و دیگه دلیل نا و بوده دلیل فران بزرگ چه گفته خود در خواست پیغمبر دلیل بسیار موتبره اگر ایک نادانی جرعت کند و بگوید که این پیغمبر مثلاً سعال بیجاہی کرده پیغمبر سعال بیجاہ می کند پیغمبر عظیم الشام او در این سعال اللہ تعالی چکد نشان داد، شما تحمل نداری استقرار کو از ممکنات یا از محالات و استقرار و ثابت ماندن کوه از امکانات محالی نیست. از نظر عقل انسان و از نظر برداشت انسان کوه یک موجود بسیار مذبود محکمت است یک چیز ضعیفیه نه به این خاطر اللہ تعالی برای تشفی و برای اینکه این محبوب موسای کلی بداند بین خاطر با اللہ تعالی ہیچ اتابی نکر اگر سال بی جاہی بود اللہ تعالی اتاب نکر که چرا سال بی جاہی کنید سآلی که کسی امکانش نزد بیدار من و در دنیا نا در آخرت بین خاطر حضرت موسی اشتیاغ پیدا کر که بی ایک نویت نوازش شدم که کلام و در قیامت همم مومنین مشرف کو شنبین نعمت حال نعمت دیگر کہ دیدار ہے. اون اونم درخواست کر اللہ تعالی کوفته ہم نے کہا یا موسی ان استفعتک ا رزالہ ہو تو دلیل اللہ تعالی موسیٰ، تمام انسان اب برسالتی طرف حالا که تو تحمل نداری، تجلی را تحمل کنی، بگوییه ناراحت نباش. یا موسای نستفه تو که عالم ناز در و تو که تحمل دیدار نداری، ناراحت نباش خود نکن غم نکن فکر ما آتی تو که خوب خود در علمیات من تحمل ندارم، چرا من لیاقت ندارم. اللہ Taala فرمود که ناراحت نباش من به تهذیب اخرام کردم. اگر الان تحمل ادیدار نداری راحت نباش.